شدت نیکان روی در فرج دارد و دولت بدان سر در نشیب، هر کرا جاه و دولت است و به دان خاطری خسته در نخواهد یافت، خبرش ده که هیچ دولت و جاه به سرای دیگر نخواهد یافت.